بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به علامات نصب. گفتیم اعراب بر چهار نو بود رفع نصب جر جزب علامات رفع رو توضیح داریم زمه و علیف و و نون و گفتیم که چه کلماتی با زمه مرفوم شوند چه کلماتی با علیف و چه کلماتی با و با کلماتی با نون اون مفتفصیلات در درسای قبلی گفته شد اما ولن نسبی خمس علامات نسب پنج علامت دارد الفتحه، والالف والکسرتو والیاو وحفل نون الفتحه، الف کسره یا وحسفنون دقیقت داشته باشیم بعضی از علامت ها مشترکند مثلاً علف علامت های رف هم بود علامت های نصف هم هست ولی در علامت های رف مخصوص اسم های مخصوص چی بود مخصوص مصنع بود یعنی مصنع هرگاه می شد علف میگرفت ولی در علامت های نصف مخصوص های سته است هرگاه اینا منصوب شوند الف میگیرند ان اباک عالمن ابا چون اسم ان از منصوب است علامت نصب الف این نقطه رو عرض کردم پس نصب پنج علامت دارد فتحه الف کسره یا و نون حالا فتحه در چی کلماتی علامت نصب هست علف در چی کلماتی میخونیم فا اما الفتحة فتکونو علامت للنسبی فی ثلاثت موابع میفرماید که فتحه علامت نصب میباشد در سجا در سه کلمه وعليکم السلام في الاسم المفرد در اسم مفرد مانند الا زیدان عالمون میگیم زیدان اسم ان منصوب علامت نصب فتحه و جمع التكسير و جمع تكسير و جمع مکسر ان العلماء ورثة الانبياء علماء منصوب علامت نصب است فتحه و الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم یتصل به آخرهی شئ و سو من جایی که فتحه علامت نصف هست فعل مزاره زمان که ناصیبی برو وارد شود و به آخرش چیزی نچسبیده باشد یعنی سیغه ینصرو تنصرو انصرو و ننصرو افعال مفرده که بهشون میگن اونایی که زمیر به آخرشون چیزی ماننده لن ینصره زیدون احدا اینجا یعنی سر منصوب علامت نصف فتح پس فتح در جا علامت نصف می باشد الف بعضی جا جانشین چی میشه شه میشه ما میتونیم تونین مطرح کنیم که علامت های نصف. فتحه و علیف و کسره و یا و حسفلون هستند یا میگونی علامت نصف فتحه هست و علامات دیگه جایگزینش میشوند مانند علیف و کسره و یا و حسفلون که قبلا هم توضیح دادم که بشون میگن اعراب اصلی و فرعی فتحه اصلی هست و فرعی علیف و کسره و یا و حسفلون که کتاب آورده است ساده و بسیار زیبا مطرح کرده است که فتحهو ألفو كسرهو يو حسفنون وأما الألف نيجي أما ألف فتكون علامة للنسب في الأسماء الخمسة علامة النسب هس در اسمهاي خمسة فقط okay. يو اسمهاي الستة معنى در رأيتو أباك وأخاك وما أشبه ذلك و؟ اشباه شد این اسمهایی که قبلا نامشون برد تا بودن و در کتابهای دیگه مثل هدایه و کتابهای دیگه شیشتا میاره مشهورن به اسمهای خمسه یا سته که هر منسوب منصوب شدن علف میگیرند ألف أز علامة رف بود در الكسرة أما الكسرة در كلمات كلام كلامات علامة الكسرة فتكون علامة للناسب في جمع المؤنث الصالح كسرة علامة ناسحاس در جمع مؤنث الصالح مسلمات ان الْمُسْلِمَاتِ اِنَّ الْآنِتَاتُون با اینکه این که المسلماتی اسم ان هست نبینیم کسره داره چرا؟ چون که هر دا جمع موننس منصوب شود چی میگیرد؟ کسره میگیرد به جای فتحه خرق الله السماواتی سموات اینجا اعرابش چی هست؟ مفعول بهیست ولی میبینیم که به جای فتح چی گرفته پس جمع محننس سالم با کسر منصوب میشود و اما الیاو فتکونو علامت للنصف ف التثمیت والجامع اما یا علامت نصف هست در تثمیه و در جامعه جاء رجلانی، این حالت رفعیش هست فائله حالا اگر ما منصوبش قرار دهیم میشه رعی تو رجولانی میشه مفعول بهی منصوب علامت نصف یا علامت نصف جا الرجلانی، رجلانی فائل، مرفو علامت رف، علیف جمع مذکر سالم همچنین هست جا المسلمون، ببینید باوا مرفو هست رعی طل، مسلمین، ولی قبل از یا مسنا فتح هست خاطر این رجولین این میشه مسلمین یعنی دو مسلمان مسلمین یعنی مسلمان ها قبل از یای جمع مذکر کسره هست این نقطه رو در ذهن داشته باشیم پس تصمیه و جمع یعنی جمع موننس سالم جمع مذکر سالم هر دو منصوب شدن علامت نسبشون چه هست؟ یا هست واما حذف النون فتكون علامة للنصب في الافعال الخمسة التي رفقها بثبات النون ي viktig انما النون علامة الناس حس در افعال خمسة ينصراني تنصراني ينصرونة تنصرونة, تنصرونه، تنصرينة دو جمعه نه اونا مبنی هم که نون دارن جز دوجمه جمعه نون دوجمه جمعه هست علامت اعراب نیست افعال خمسه هرگاه مرفو باشند نونشون ثابت میمونه مانند ینسرانی الرجلانی ینسرانی ولی منصوب کشیده لونه هست میشه الرجلانی لن ینسران علامت یعنی علامت طرف میگیم نونه در یعنی لن اومده منصوب علامت چیه؟ علامت همینه که نون شده؟ حذف شده میگم پس حذف نون علامت نصف هست در افعال خمسه ای که مرفوب بودنشان با ثبوت نون بود که اون سیغه ها رو نام بردیم پس اینها شدند شدن از علامت های در همین یک درس علامت های جر رو هم یا خفض رو هم بخانیم ولی الخفضی ثلاث علامات خفض یا همون جر چه علامت دارد؟ چند علامت دارد؟ الكسرتو یک کسره که علامت اصلیش هست و الیاء و فتحه که علامت های فرعی هستند یا به عبارت دیگر جاگوزینه کسره میشن در بعضی کلمات که خودش توضیح میداد پس جر یا حفظ سه علامت دارد کسره او یا او فتحه الکسره تو فاما الکسره تو فتکونو علامتن للخفض فی ثلاثتی مواده میگه کسر علامت جرمی باشد در سجا فی اسم مفرد منصرف، در اسم مفرد منصرف یعنی اگر اسم مفرد منصرفی مزرور شد کسر میگیرد مانند اللهم صلی علا محمدین محمد مفرد و منصرفه مزرور شده چه گرفته؟ کسر گرفته پس مفرد منصرف مجرور بشه علامت جرش چیه؟ کسره و جمع تکثیر منصرف و جمع مقصر منصرف مرر تو بر رجال رجال مجروره چون حرف جر روش اومده علامت جرش هست؟ کسره هست و جمع المعنس سالم و سو که کسر علامت جره جمع معنس سالمه مررتو به مسلمات سلمتو على مسلمات مجرور هست علامت جرش کسره هست پس جر سلامت دارد یکیشون کسره هست اون جاهایی که کسر علامت جر بود رو گفتیم و اما او فتکون علامتا للخفض فی سلاست مواضع می فرماد که یا علامت جر هست در سه جا یا علامت جر هست در چند جا فل اسماء الخمسه یک در اسمهای خمسه مانند مررتو تو بی عبی که تو بی که چرا اینجا شده ابی نشده ابا نشده ابو چون اینجا مجروره و اسمای سته هرگاه مجرور بشن چی میگیرند؟ یا یا میگیرند بله جای دومی که یا علامت جر هست وفت تثنیه هست مانند مرر تو به مسلمینی اگر مرفومی شد میشه مسلمان منصوب هم میشد میشد مسلمین مجرور هم بشه میشه مسلمین رایت تو به بموسلمانی در حالت جر مصنح علامت جرش یا هست پس پس دومین ای که با یا مجرور میشه چی هست مصنح هست و جمع و جمع یعنی زور جمع مذکر سالمه نه جمع جوای دیگه و جمع مذکر سالم هم هرگاه مجرور میشه یا میگیره مانند مرر تو به مسلمین مرر تو به مسلمین که مجرور شده با با یا مجرور شده با یا نون, هیچ. نون هست میشه در حالت اضافه نون علامت اعراب نیست فتحه اما فتحه چجا علامت جرح است علامت خفض است و اما الفتحه فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصرف فتحه علامت جرح است در اسمی که غیر منصرف لا ينصرف است غیر منصرف است پس مثلا ما مفرد داریم منصرف و غیر منصرف محمد هم مفرده عمر هم مفرده ولی محمد منصرفه عمر غیر منصرف محمد موقعی که بشه کسره میگیره عمر که مضرور بشه فتح میگیره سلمتو على محمدین تو على عمره چون غیر منصرف یک تنوین نمیپذیرد دو کسره نگرین که الفلام بر آن وارد شود یا مضاف باشد که اینو در کتاب هدای شما قبلا خوندید اونایی که هدایه رو خوندند خب حالا با توجه به که علامت های اعراب رو خوندیم علامت‌های های اعراب رو در از خاندیم ما چند تا کلمه داشتیم مفرد منصرف مفرد غیر منصرف جمع مکسر منصرف جمع مکسر غیر منصرف مفرد و جمع مکسر منصرف اعراب یه چیزی بود یک صنف بودن یعنی هرگاه مرفوع می‌شدن ضمه می‌گرفتن، منصوب می‌شدن فتح می‌گرفتن، مجرور میشوند کسر می‌گرفتن. غیر ها چه مفرد چه جمع مکسر هرگاه مرفوع می‌شدن ضمه می‌گرفتن، منصوب می‌شدن فتح می‌گرفتن، مجرور میشوند بازم فتح می‌گرفتن. خب جمع مؤنث سالم رو خوندیم. جمع مؤنث سالم ای است که با الف و جمع جنبسه میشه مسلمتون مسلمات سماوات. جمع مذکر سالم خوندیم که با اضافه کردن علف و نون یا و نون در آخر مفرد ساخته می شود. مسلم، مسلمون، مسلمین حالا با تاجه به حالت رفع این تغییر می کرد فقط این کلمات توضیح نداده بود فقط علامت اعراب و درشون بیان کرده بود ولی از اون جای که کلمات دیگه ساده بودند ما هم توضیحاتی ندادیم فقط مونده علم در مورد علم این نقطه رو یاد کنن که در مورد میگم علم در مورد غیر منصرف غیر منصرف صرف رو نمیپذیرد به خاطرین بهش میگن غیر منصرف صرف یعنی چی؟ یعنی تنوین صرف یعنی چی؟ یعنی تنوین صرف یعنی تنوین یا تنوین تنوین شبیه فعل هست نه تا علامت داریم چند تا علامت که اگر دو تا از این نه علامت در کلمه بود یا یک علامت که جای دو علامت رو میگیره میگن این کلمه غیر منصرف است. این،, این نه علامت نه سبب غیر منصرف در چه کتابی اومدند هم هدایه و هم کتاب نهزمیر که فارسی هست شما میتونید راحت به اون کنید مراجعه کنید یکیشون تانیس هست یکیشون اجمه هست یعنی غیر عربی بودن یکیشون ترکیب هست مانند بعلبک اجمه هم مانند ابراهیم یکیشون کشن فنون زایدتان هست مانند عثمان عثمان هم اسم علم و هم الفنون فنون زایدتان داره میگیم این غیر منصرف اللذا تنوین قبول نمیکنه صلی الله تعالی یکی یکیو از نفعل هست مانند احمد یکیش عادل هست مانند عمر این اسباب این اسباب دو تا سبب در یک کلمه بودن اون کلمه چی هست البته بعضی از اسباب اگر یک سبب هم در اون کلمه باشه اون کلمه بازم غیر منصرف هست اون سببات چی هستن؟ یکی منطحل جموع مثلا مساجد میگیم غیر منصرفه؟ چرا؟ چون منطحل جموعه بعد از علف جم دو حرف یا بیش از دو حرف اومده باشه اگر کلمه منطحل جموع بود دیگه دنبال علت دیگه نمیگردیم میگیم این کلمه غیره؟ منصرف هست یا کلمه ای که با علف تعنیس مقصوره باشه باز هم به تنهایی کافیه که غیر منصرف هست و همچنین علف ممدوده مانند همراه پس این علت هایی که نام بردم در آخر به تنهایی کافیه که کلمه رو غیر منصرف کنند اما علم بودن به تنهایی کافی نیست یعنی کلمه اگر علم بود باید یک سبب دیگه هم داخلش باشه که غیر منصرف باشه مثلا فاطمه میگیم فاطمه هم علم هست اسم خاصه هم تائی داره به خاطر این غیر منصرفه زینب هم چنین حمزه هم چنین یا ابراهیم میگیم هم علمه هم عربی نیست یا معدی یا هم علمه هم مرکبه یا عثمان هم علمه هم الفلون زائدتان داره احمد هم علمه هم بر وزن فعله عمر هم علمه هم عدل هست خب این نقطه رو به خاطر این در این درس اضافه کردم که شما گفته بود غیر منصرف هرگاه مجرور شد کس رو نمیگیره پتر میگیره لذا غیرمنصرف خیلی خیلی مختصر توضیح دادیم گفتیم نه تا سبب وجود داره چند تا سبب که اگر در کلمه ای دو تا از اون سبب ها باشن اون کلمه غیر منصرفه. یا اون سبب هایی که جای دو سبب میگیرن ولی اون سبب ها چی بودن علیف تنیس تا... چه مقصورهش چه نمدودهش و منطحل اما علم بودن، تعنیس بودن، عجمه بودن، مرکب بودن، الهنون زائدتان، وزنفل، عدل اینها اگر به تنهایی در کلمی بودن غیر منصرف نیستند. مثلا محمد علمه ولیکن علت دیگهی درش نیست پس منصرفه ابراهیم هم علمه هم اسمی عربی نیست رضا غیر منصرف است تا اینجا کار علامت های اعراب تموم شدن مال افت انشاءالله درس بعدی علامت های اعراب در فعل رو خواهیم خواند محقق و فیلیوز باشید